افسونه افسانه به نام خدا، سلام افسانهها ها فرق نمی کنند افسانه های ایرانی باشند یا غیر ایرانی همه ریشه در اخلاق و کردار درست دارند و این نشان می دهد که از دیرباز تا به امروز این اخلاق است که معیار راستی و درستی انسان ها و جوامع بشری است در این برنامه می خواهیم یکی از افسانه های کشور عزیزمان ایران را برایتان روایت کنیم. افسانه‌ای به نام سنگ صبور که از کتاب افسانه های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببریم. یکی بود یکی نبود هرچه رفتیم راه بود و چه کندیم چاخ بود سالها پیش در یکی از روستاهای کشور عزیزمون ایران پدر و مادری همراه با تنها فرزندشون فرانگیز زندگی میکردند پدر و مادر فرنگیز فرنگیز رو خیلی دوست داشتن و برای اینکه خوشبختی اون رو تزمین فرنگیز رو به مکتب خونه فرستادن تا درس بخونه و سواد بشه اما هر روز که فرنگیز به مکتب خونه می رفت، در راه صداهایی میشنید می شنید هیچ وقتم جرعت نمی کرد تا درباره اون صداها با کسی حرف بزنه تا اینکه یه روز که داشت به مکتب خونه می رفت باز هم همون صدا رو شنید فرنگیس که حسابی ترسیده بود با وحشت به خونه برگشت مادر مادر تو رو خدا باز کنی زود باشید درو باز کنید منم مادر فرنگیس توی فرنگیس چرا نرفتی مکتب خونه؟ چرا اینقدر پریشونی؟ من دیگه مکتب خونه نمیرم مادر نمیرم نمیرم خاک بر سرم چی شد آخه چرا داری میلرزی؟ ببینم نکنه حکیم باشی تو رو به فلک بسته باشه من اصلا مکتب خونه نرفتم که حکیم باشی بخواد منو به فلک ببنده پس چی شده؟ چرا نمیخوای بری مکتب خونه؟ دیگه نمیرم مادر من به اندازه کافه خوندن رو نوشتن یاد گرفتم دیگه نمیخوام برم مکتب یه کلوم حرف بزن ببینم مشکل چیه دختر اگه پدر دزم پرسید فرنگیس چرا نمیخواد بره مکتب من بهش چی بگم آخه؟ بهش بگو اینجا چه خبره سلام بده فرنگیس سلام تو اینجا چی کار میکنیم فرنگیس فرنگیس میگه دیگه نمیخواد به مکتب خونه بره برای چی؟ همه یه ای دخترها این روستا برن مکتب خونه و درس مخونن اون وقت فرنگیس برای ما عدا در میاری که نمیخواد بره والا منم هم همینو میگم ده حرف بزن دختر اصلا مکتب خونه رو ول کن بگو چرا داری این بید می لرزی من ما... هر وقت میرم مکتب خونه یه صداهایی میشنوم مادر چه صداهایی؟ نمیدونم ببینم فرنگیس کسی تو راه های مزاحمت میشه؟ نه پدر من اصلا هیچ کسو نمیبینم فقط صداشو میشنوم؟ یعنی اصلا نمیدونی اون صدا مال کیه؟ نه باور کنی تو این مدت حتی یه بارم ندیدمش خب حالا چی بهت میگه؟ مدام بهم میگه باید از اینجا بری فرنگیس باید از اینجا بری فرنگیس خدایا این دیگه چه سریه بهادو چی بگم اختر؟ ببینم فرغ تو مطمئنی کسی نمیخواد اذیتت کنه مطمئنم وقتی این صدا میاد من همه اطرافمو خوب نگاه میکنم هیچ کسی رو دور و نمیبینم انگار انگار اون صدا مال یه آدم زمینی نیست بسم الله یعنی میخوای بگی جن و پری با حرف میزنه نمیدونم مادر به خدا هیچ نمیدونم جملل چی چیکار کنیم بهادر والله تو این همه سال که از خدا عمر گرفتم بعد جنی شدن پسر فیض‌الله این اولین باره که هم چه چیزایی میشناvem یعنی میخوای بگی فرنگیس ما هم جنی شده؟ نه بابا این چه حرفیه من دیگه جرأت نمیکنم برم مکتبونه به نظر منم دیگه صلاح نیست بری مادر میگم بهادر حالا آه. که اون صدا همش به فرنگیس میگه باید از اینجا بری به نظر بهتر نیست از این روستا بریم یه جای دیگه زندگی کنی. میگم والله خودم هم داشتم به همین فکر کردم. ما که از دار دنیا همین یه بچه رو داریم نکنه صلاح و حکمتش در این باشه که از اینجا بره و بخت و اقبالش رو یه جای دیگه پیدا کنه ها یعنی اگه از اینجا بریم اون صد تا دست‌أسسرم برمیداره انشالله که دست‌أسسرت برمی‌داره آه چی میگی بهادور موافقی خیلی زود بار رو بنمون رو جمع کنیم و شبونه رو روستا بریم به نظر میاد چاره دیگه ای نداریم اختر. باشه باشه باش. تو اسباب و اساسیه رو جمع کن منم چند تا مرکب آواده می کنم شبونه از این روستا می زنیم بیرون ببینیم تقدیر چه خوابی برابیم دیده دست کارشون زود به کمک هم همه وسایل خونه رو جمع کردند بهادورم شب با چند تا اسب و قاطر به خونه اومد و وسایل رو بار مرکبا کردن و راهی شدند رفتن و رفتن تا اینکه هوا روشن شد و خودشونو دریه بیابون بیاب و علف دیدند اولش ترسیدن ولی تصمیم گرفتن به راهشون ادامه بدن چند ساعت بعد به باغی رسیدن که دره بزرگی داشت آه، چه باغ بزرگی این باغ بزرگ و سرسب وسط این بیابون چیکار میکنه اصلا کی تونسته همچه باغ بزرگی رو اینجا به عمل بیاره به عمرم چین باقی ندیده بودم بهادو ببین دیوارش از کجا تا کجا کشیده شده میگم آه. آم این حتما باقی عربا به فکر میکنین کسی تو این باغ زندگی میکنه؟ مگه میشه باغ به این بزرگی بی سر و صاحب باشه فرنگی؟ ام. این باغ خیلی بزرگه فکر نمی کنم اگه صاحبشو صدا بزنیم اصلا صدامونو بشنوه من می ترسم بهتر از اینجا بریم کجا بریم فرنگیست مگه ندیدی هرچی اومدیم بیابون بود و بیابون حتی یه آدمی زادم به چشم خودمون ندیدیم بالاخره اینجا یه آدمی زادی زندگی می کنه یه پیاله آب بهمون بده به نظر منم این با کمی مرموز اختر ببین چه دیوارهای بلندی داره وای اینجوری حرف نزن بهادور خوفم میگیره به نظر من که بتر از اینجا بریم میترسم بریم و ازیر بیابون بشیم و از گشنگی و تشنگی بمیریم دخترم پس چیکار کنیم اونجا رو نگاه کنیم آه, کجا اونجا یه در بزرگ هست اه. آه. آه. آه. اره، اره، اره، در باغه او چه غ خب بزرگه من میگم بریم جلوتر ببینیم چه خبره بریم یا یا باش در بزرگی آره خیلی بزرگه شما خسته شدی من میرم در میزنم حتما یه نفر میاد در باز کنه دیگه باشه برو ولی فرنگی خیلی مراقب باشی آره دخترم باشه باشه. برو کسی باز نمی کنه اختر. اگه کسی نیست بیا بریم فرنگیست باز کن باده. من میرم تو ببینم میتونم کسی ببینم یا نه باشه براقب باش دخترم آی دره بسته شد نمیدونم چرا دلم شور میزنه زنه بهادور همش فکر میکنم که دره دره ببین ببین بهادور در ای یا خدا یا خدا فرنگیست فرنگیست خدا خدا بگی خجاست ایک دیوار که هیچ دری نیست دره چی شد بهادو دره کجا رفت همینجا بود خودمون و چشم خودمون دیدیمش من نمیدونم همین که فرنگیست برد باقشد در ای خیلی بیشن فرنگیست فرنجی خدایی خدایی دخترم از خودت بخواد چه بلای سر دخترم اومده فرنجی باشو. فرنجی از اینکه در باغ غیب شده بود وحشت کردند و ساعتها برای پیدا کردن فرنگیس به دیوار باغ کوبیدند. از فرنگیس خبری نشد که نشد. هوا کم کم تاریک شد و بهادر و اخدر که از پیدا کردن فرنگیس ناامید شده بودند سوار اسب شدند و به راهشون ادامه دادند. از طرفی فرنگیز همین که وارد باغ شد به امارت بزرگی رسید که پر از فرشای قیمتی و وسایل گرون قیمت و تلا و نقره بود فرانگیز همه اتاقای امارت و گشت تا اینکه در اتاق هفتم چشمش به جوانی افتاد که روی تخت خوابی از پرق و خوابیده بود. خدایا این کیه اینجا خوابیده؟ چقدر سوزن تو تنش فرو کردن. آقا آقا آقا بیدار آقا چرا بیدار نمیشه؟ آقا ببخشید من بدون اجازه وارد باغتون شدم. من و پدر و مادرم خسته و گرسنه بودیم و پناهی نداشتیم برای همینم من وارد باخت شدم تو از شما اجازه بگیرم که بذارین شبای اینجا بمونیم ولی آقا صدای منو میشنوین نکنه مرده باشه خدایی چیکار چیکار کنم اگه این مرد مرده باشه چی نکنه فکر کنن منونو کشتم آقا آقا تو رو خدا بیداشین من وقتی وارد باغتون شدم در باغ غیب شد فقط فقط به من بگی من چجوری میتونم از این باغ برم بیرون تو رو خدا کمکم کنین ما نمیخواستیم از باغ شما دزدی کنیم اجازه بدین از اینجا برم بیرون میخوام برم پیش پدر و مادرماین این باد این با لعنتی دیگه چی از جورمون میخواد آه. اون کاغذی چیه؟ انگار یه چیزی روی کاغذ نوشته شده هر کسی که هر کسی که 40 شب و روز بالای سر این جوان بماند و روزی یک بادام بخورد و یک انگشتان آب بنوشد و این دعا را بخواند و روزی یکی از سوزنها را از بدن جوان درآورد. روز چهلم جوان عطسه می و از خواب بیدار می شود پس این مرد جوان خوابیده باید کارایی رو که اینجا نوشته انجام بدم. باید باید این مرد جوان رو بیدار کنم تا در باغو باز کن و من برگردم پیش پدر مادرم سی و پنج روز تمام شبانه روز بالای سر مرد جوان نشست و روزی یه بادوم خورد و یه انگشتان آب نوشید و بعد هم یه سوزن و از بدن اون مرد بیرون کشید و دعا خوند اما حسابی خسته و کم توان شده بود چون در تمام این مدت نتونست یه دل سیر بخوابه و خستگی درکنه کنه حالا خستگی از یک طرف اونو آزار میداد و تنهایی از طرف دیگه تا اینکه یه روز از پشت باغ با عجله بالای دیوار رفت و دید که کاروانی از کلیا درن از کنار باغ عبور میکنن. سلام آهای سلام اه. این صدای کیه؟ صدای مه من اینجا روی این دیوار نگاه کنین آها آها. آها. تو که هستی دختر؟ اسمم فرنگیسه شما کی هستی؟ من قدرتم بزرگ کالیا از کجا میانی؟ به کجا میریم؟ از غرب اومدی ما به طرف شرق میریم این باغ بزرگ مال تو نه من اینجا مهمونم خیلی تنهام یعنی چی تنهایی یعنی تنهام هم صحبتی ندارم بیشتر از یک ماهی که تو این باغم اما با هیچ گرف نزدم یعنی هیچ غیر از تو تو این باغ نیست؟ کسی که بتونم باش حرف بزنم اینجا نیست ازتون یه خواهشی دارم چه خواهشی؟ اگه میشه یکی از دختراتو بفرست بیاد پیش من تو همصحبتم بشه در ازای اون هر چی بخوای بهت میدم مثلا چی طلا نقره باوکن مثل جونم ازش مراقبت میکنم و بهش هیچ آسیبی هم نمیرسونم باشه ولی بگو ببینم دخترمو رو چطوری روی این دیوار بفرستم بالا نگران این چیزا نباش من توانایی زخیمو بلند دارم که میتونم بندازم پایین تا ببندی به کمر دخترت اونو بفرستی بالا فقط بگو، کدوم یکیشون رو بفرستی پیش من؟ کرشمه ترشمه دختر کوچیکه منه آه. آقل و ماهوشه هم صحبت خوبی هم از برات اونو رو میفرستم از در بیای باشه، خدا از پدری کمت نکنه منم میرم تنهاب بیارم پس تو دو... دو تا کیسه بیار تا باید حساب بشین فنگی باشه باشه همینجا منتظر بمونین تا برگردم به امارت رفت و دو کیسه سکه تلا رو برداشت و تناب زخی میرم پیدا کرد و با خودش برد بعد هم از روی دیوار بالا رفت و تناب رو از روی دیوار به اون طرف انداخت و کرشمه رو بالا کشید بعد هم دو کیسه سکه تلا رو به قدرت داد و بهش قول داد که مراقبی کرشمه باشه فرنگیس از اینکه هم صحبت پیدا کرده بود خوشحال بود و قصه خودش رو برای کرشم تعریف کرد اما از جوانی که داخل اتاق خوابیده بود حرفی نزد اور این اینم از سرگذشت منو این باغ متروک هنوز نفهمیدی چرا اون صدا به تو میگفت که از اینجا بری نه ولی وقتی یاد اون صدا میافتم از وحشت همه تنم شروع میکنم به لرزیدن شاید شاید هم تقدیر من این بوده که بیام این باغ و زندگیم عوض بشه دلت برای پدر تنگ نشده خیلی دلم براشون تنگ شده ولی نمیدونم کجا باید برم دنبالشون بگردم از طرف خودم هم دل این باغ شدم دلم نمیاد این باغ و امارتو بذارم و برم مم. حق داریم باغ قشنگه امارت بزرگیه. دلکندن چندان ازش ساده نیست. <تصفيق> خب تو از خودت بگو که من که از وقت چشمه باز کردم با خانواده و اقوامم به این شهر و اون شهر رفتیم و برنامه اجرا کردیم. <تصفيق> تا اینکه امروز به حوالی این باغ افتاد. <تصفيق> از این همه گشت و گذار خسته نمی‌شین؟ <تصفيق> خیلی خسته میشیم. ولی بله ای نداریم. ما کلیا شهر و دیاری نداریم. مجبوریم از این شهر به اون شهر بریم و تو چادر زندگی کنیم. اهلانم خیلی خوشحالم که تو من نجات دادی از پدرم خواستی که پیشت بمونم منم خوشحالم. خب گرشمه بهتر بری همومو لباسات عوض کنی و یه دست لباس حریر نو تنت کنی این لباسایی که تنتو خیلی کسیفه باشه از فردا هر روز ساعتها توی این باغ قدم میزنیم و با هم درده دل میکنیم زی از اومدن کرشمه گذشت کرشمه که دختر زیرک و باهوشی بود متوجه رفتارهای مشکوک فرنگیز شد اون از شش اتاق تو در تو گذشت و به اتاق هفتم می رسید و بالاخره تونست سر از راز فرنگیز در بیاره اون دید که فرنگیس به اتاقی رفت و یه بادوم خورد و یه بندانگشت آب نوشید و دعایی خوند و سوزنی و از تن اون مرد جوان درآورد. آورد. کرشمه بدون اینکه حرفی بزنه به اتاق خودش برگشت. در چهلمین روز فرنگیس از شدت خستگی به خواب رفت. اما کرشمه به اتاق هفتم رفت و یه بادوم خورد و یه بندنگوش آب نوشید و دعایی خوند و آخرین سوزن و از تن مرد جوان بیرون آورد. مرد جوان عدسه کرد و به هوش اومد. خدا شکر شما به <تص هوش اومدیم؟ ببینم تو،, تو تو کی هستی من کرشمم تو کی هستی من من کیهانم کیهان هم. اسم قشنگیه معمولا اشرافزاده این اسمو رو بچههاشون میزرن درسته من اشرافزادم ببینم کرشمه اه. تو میدونی من چه مدت خواب بودم نه اینو نمیدونم ول میدونم که چهل شبانه روزی که دارم روزی یه بادوم میخورم و یه بنده انگوش آب مینوشم و بعدم برای بهوش اومدن دعا میخونم و اون زنایی که تو تنت فرو رفتره در میارن خدای من چه کار طاقت فرسایی شما دوشیزه مهربونی هستید تاله <تصوح> بلندی داری که من از این باغ سر در آوردم کیهان کشم <تصوح> ا جایی؟ شما به حوش اومدی؟ این دختر کیه کرشمه؟ ام ام این, این دختر کنیز منه که ایهان ام کارای امارت انجام میده ببینم فرنگیز تو هنوز یاد نگرفتی بدون اجازه وارد سرای من نشی؟ سرای تو؟ ولی این, این انصاف نیست کرشمه این من بودم که این دختر چی داره میگه به دل نگیر کیهان این دختر توهم داره عقل درست حسابی نداره خودش هم نمیدونه چی داره میگه خب دیگه فرنگیز برو غذای من و آقا را آماده کن زود باش باید. ما امروز بعد جشن بگیریم یه جشن بزرگ و باشگ عجله کن هر روز بهتر و بهتر شد کرشمه خودشو بانوی عمارت جا زد هم شد کنیز کرشمه تا اینکه یه روز کیهان تصمیم گرفت به سفر بره اون از کرشمه پرسید چه سوغاتی براش بیاره کرشمه لباس اطلسی زری سفارش داد به اصرار کیهان فرانگیز هم سنگ سبور سفارش داد و کیهان راهی سفر شد بعد از خریدن لباس اطلاسی زریدوزی شده دنبال سنگ سبور گشت سلام سفدر توی؟ آره خودمم فرمایش من... من کیهانم و از راه دوری به این شهر اومدم چند وقتی دنبال سنگ سبور میگردم گفتن تو میتونی کمکم کنه سنگ سبورو برای کی میخوای؟ برای کنیز امارتم ام. اون دختر خیلی خوب و مهربونیه هم اما همیشه خب ناراحته از من خواست وقتی به سفر اومدم براش سنگ صبور بخرم گمون نکنم اونی که سنگ صبور سفارش داده کنیز باشه منظور چیه؟ من بهتر اونو میشناسم یا تو؟ من تجربه بیشتری دارم یا تو؟ نمیفهمم ببین کسی که میخواد با سنگ صبور حرف بزنه حتما دل پردردی داره حتما یه راز بزرگ تو دلشه حتما هیچ کس حرفاشو نمیفهمه و قصهشو نمیخوره که میخواد بدبختیاشو به سنگ صبور بگه خب من خیلی اون دختر رو نمیشناسم ولی حتما همینطور که تو میگی حالا ببینم سنگ صبور داری؟ آره دارم ولی می خوام یه چیزی بهت بگم و تو هم بهش عمل کنی. چی؟ وقتی این سنگ سبور رو به اون کنیز دادی، شب بعد از انجام دادن کارها اون کنیز به اتاقش میره و شروع میکنه به حرف زدن با سنگ صبور. بعد هم همه اسرار دلش رو به سنگ صبور میگه. تو میتونی پشت در اتارش بری و حرفاش رو گوش کنی و اگه نیاز به کمک داشت کمکش کنی باشه حتما حالا میشه اون سنگ سبور رو به من بدی؟ آره تا تو سکه های رو آماده کنی منم میرم اون سنگ سبور رو برات بیارم باشه سنگ صبور رو از صف خرید و به و امارت خودش برگشت. بعد هم سوقاتی کرشمه رو به کرشمه داد و رفت سراغ فرنگیز و سنگ سبورم به فرنگیس داد. شب وقتی فرنگیز کاراش رو تموم کرد و به اتاقش رفت کیهانم آهسته و بی صدا پشت سرش به راه افتاد تا به سفارش صفتر عمل کنه و به حرفای فرنگیش گوش بده سلام سنگ صبور. تو صبوری یا من صبور. به من بگو چی کار کنم که همه حرفامو باور کنن از روزی که وارد این باغ شدم و متوجه شدم که یه مرد جوون تو اتاق هفتم روی تخت خوابیده به همه سفارش هایی که توی اون کاغذ نوشته شده بود عمل کردم سی و نه روز تمام روزی یه بادوم خوردم و یه بند انگشت آب نوشیدم ساعت ها بالای سر اون مرد جوان نشستم و برش دعا کردم و آهسته سوزنا رو از بدنش بیرون کشیدم اون وقت در چهلومین روز کرشم از خستگی من سو استفاده کرد و رفت و همین کارا رو انجام داد و اون جوون از خواب بیدار شد بعدم طوری وانمود کرد که انگار توی مدت اون بود که خستگی و شب نخوابی و نخوردن رو تحمل کرده حالا کیهان فکر میکنه کرشمه به خاطرش این همه فداکاری کرده اون فکر میکنه من واقعا کنیز کرشمم و حقم اینه که کارای این امارت رو انجام بدم هیچ کس حرفای منو باور نمیکنه. هیچکس به من اعتنایی نمیکنه. تو دلم پر از قصه. است. من تو این باغ موندم و نتونستم برم دنبال پدر و مادرم. من از پدر و مادرم گذشتم تا بتونم کاری کنم که کیهان بیدار بشه. اما اما همه چیز به نفع کرشم تموم شد. ای سنگ صبور حالا به من بگو ببینم تو صبوری یا من و کی اونجاست کی, کی اونجاست منم شما این آقا من همه حرفایی رو که باید میشنیدم شنیدم شما چی شنیدین چرا به من نگفتی تو کی هستی فرنگیست چرا به من نگفتی؟ این تو بودی که منو از خواب بیدار کردی خب من چند بار گفتم اما شما باور نکردین کرشمه به شما گفت که من عقل درست حسابی ندارم برای همینم فکر کردین دیوانم و از رو نادونی حرف میزنم منو ببخش فرانگیز. من به صداقت تو ایمان دارم و شک ندارم هرچی گفتی و من شنیدم کاملا درسته منش درسته من هیچ دروغی نگفتم من برای اینکه شما از خواب بیدار بشید خیلی تلاش کردم اما روز چلو... میدونم و میخوام به خاطر سهلنگاری من ببخشی منو این چه حرفیه پدر مادر من به زودی به این امارت میان قرار بود بیان شاهد ازدواج من با کرشمه باشند. اما اونی که ناجی من بود و به من زندگی دوباره بخشی تو بودی حالا میخوام ازت بپرسم با من ازدواج میکنی؟ خب من نمیدونم با،, با کرشمه چیکار کار میکنی؟ اون میشه کنیز تو کنیز این امارت حالا موافقی با من ازدواج کنی؟ من به پدر کرشمه قول دادم که خیلی خوب ازش مراقبت کنم خانواده کرشمه کلی و چند وقت دیگه از اینجا رد میشن من به کنیز نیاز ندارم قول بده وقتی خانوادش اومدن اجازه بدی برگرده پیش خونوادش چون چنین آدمی اگه کنارمون باشه باز میتونه برامون درد ساز بشه باشه هرچی تو بگی حالا بگو ببینم حاضری با من ازدواج کنی؟ خب راستش من اه... نمیخوادی چرفی بزنی خودم متوجه شدم مبارکه <تصفيق> <تصفيق> چند روز بعد پدر و مادر کیهان به باغ اومدن. کیهان به فرانگیز کمک کرد تا پدر و مادرش رو پیدا کنه حالا؟ همگی خوشحال و شاد منتظر برگزاری مراسم ازدواج کیهان و فرگیس بودند مراسم ازدواج اونا با خوشی و خرمی برگزار شد چند ماه بعد خانواده کرشمه از کنار اون با گذشتن و کیهان طبق قولی که داده بود کرشمه رو به خانواده‌اش تحویل داد به پیشنهاد کیهان پدر و مادر فرنگیز هم ساکن همون باغ و عمارت شدن و کیهان و فرنگیز سالهای سال با خوبی و خوشی کنار هم زندگی کرده. بله دوستان، این هم از افسانه سنگ صبور که از افسانه های کشور عزیزمان ایران بود. به ما آموخت که ماه حقیقت هیچ وقت پشت عبرهای ریا و فریب پنهان نمی ماند و خوبی هرگز از بین نمی رود. افسانه سنگ سبور اقتباسی است از کتاب افسانه های ایرانی نوشته محمد قاسمزاد که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید افسونه افسانه این داستان سنگ صبور تنظیم برای رادیو از صهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرا محرخ افسلی، بهناز بستاندوست، معصومه عزیز محمدی، علی میلانی، حمید یزدانی، شیرین سپهراد، امیر فرهانیا، علی ازخر دریایی کارگردان ایوب آقا خانی. افکتور نازنین حسن بود صدابردار فرقزاد شریفی تهیه کننده زحرا عبدالله زاده افزانه ها رنگی از زندگی هست زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانهای دیگر بدرو